گفتن نفس من خیلی مغروره برای شکست غرورم چیکار کنم؟ هر جا میرسید تو مجالس بشین هر جا جا هست همون در این جایی هر جا جا هست بشینید میرسید به افراد سوتر سلام کنید اینها انشاءالله